سیومین حديث فرمودی رسول الله صلی الله علیه وسلم الاشره, الاشره نفوس یا اون ذاتی که شروره شره ذاتی که شر شره یعنی معذب باشید از شرارتی که از اون نفس شریر نفس نفسی که پس پسته نفسی که به جایی که خودش را با ایمان زینت به ببرزه زیباش کنه نفسشو با حقد و حسادت و نگاه به نعمتی که دیگران دارن خودش نداره با کفران نعمتی که و که خودش داره با حریص بودن بر دنیا و نادیده گرفتن نعمتایی که الله به خودش داده خودش رو شر کرده نفسمون رو پس پاک بسازیم و زیبا بسازیم و از شروریت به خیریت تبدیل بکنیم به خیریت تبدیل میشه در صورتی که خیرخواه باشیم اگر نعمتی را در دیگری دیدیم دیگر میگیم الله خیر و برکت درش بیاندازه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر نعمتی را در شخصی دیدی بگید اللهم بارک فلی و برک تبریک بگید بگید اللهم بارک الله خیر و برکتش را بهش بده خیر و برکت درش بیاندازه دایی خیر براش بکن نفس خودتو درمان کن به مال دیگری نورز مال دوست و مال پرست نشو مال دوستی تو همه ایمون هست ولی اون نفسی که مالپرست شره اون نفسی که مالپرست مال را یعنی با مار رفقتشو به هم میزنه با مال دوستشو میفروسه پدرشو برادر تنیش را خواهرش را بخاطر عرص و میراسی پشت میده عقوق میکنه و ارحامش را قط میکنه این نفس شره نفس را تبدیل به خیریت بکنیم بخاطر مال دنیا هم دیگر قهر نکنیم پشت به هم دیگر ندیم رسول الله صلی الله علیه وسلم تعیص حبت و سلم درهم و دینار تعیص باشه بدبخت و خار و زلیل باشه اون کسی که برده و بنده ماله تا مال داری با هات رفیقه تا ماشین کلاس بالایی داری با هات رفیقه ولی اگر تو پول نداشته باشی دیگه تو رو نمیشناسه اگر با خاطر رفاقت داره بخاطر خاطر اون مالی که داری اگر مال داشته باشی بهت ارزش قائل نمیشه این نفس شره نتونسته خیرخواه باشه نتونسته خودشو خودش رو درمان بکنه و زیبا بسازه با ایمان ایمان انسانو زیبا میسازه چقدر ایمان زیباست ایمانی که میگه دست پدر و مادر را بگیر ایمانی که میگه دست برادرت را بگیر ایمانی که بهت میگه لبخند تو صورت برادر صدقه هست ایمانی که بهت میگه برحذر باش از جهنم حتی اگر نصف خرما باشه خودت رو نجات بده با صدقه دادن اینها مکفرراته. اون ایمانی ای که بهت ارزش قائل میشه و به مؤمن در زندگی و در زنده بودنش و مردنش ارزش قائل میشه اگر مرد سر جنازش بریم حقوقی که مؤمن به گردن مؤمن دیگه داره رفتش جنازش بریم نماز روش بخونیم قبرستون بریم دفنش بکنیم غسلش بزنیم اینا وظایف ایمان رو زیبا می سازه چقدر مؤمن زیباست ولی کفر زیبان است ولی کفران نعمت زیبان است زنی که خوبی‌های شوهرش رو نمیبینه و کفران میکنه دفنش میکنه فقط نگاهو کنه فقط نگاه خواهر شوهرش میکنه فقط نگاه همسایش میکنه خواهرش میکنه اون داره من ندارم خیرخواه نیست. فقط به نفس خودش نگاه میکنه من ندارم اون چیزی که اون داره تم دنیا داره بر برمار دنیا تم انسانو نابود میکنه. برادران دوستان کسانی که این صدا رو نفس خودمون رو پاک بسازیم از تمع دنیا از حب زیادی دنیا که تبدیل بشه اون مال دوستیم. اون دنیا دوستیم. اون به و نفس منو پاک بسازیم این و باسه به اون مال نشیم این مال را الله میده و هر وقت که بخواد برمی داره و میگیره از ما الله رزاق رزق روزی رسانه به یک کسی بیشتر داده یک کسی کمتر داده خودش میدونه به کی بده به کی نده چش به مال دیگران نvær فلانی فران ماشین داره فران منزل داره به نگاه پیراهنش نکن نگاه به شغلش نکن از دلش چه با خبری تو چی میدونی خدا چی بهش نداده که به تو داده از صحت و سلامتی از نعمت ایمان تو به خودت ارزش قائل شو و به اون چیزی که الله بهش داده قانع باش کسی که قانع باش رسلا زدان میگه به اون چیزی که الله بهش داده غنا و بینیازی را الله در قلبش میگذاره بس نفسمون رو غنی بسازیم و خودمون رو بینیاز بیکنیم و بیتمع بسازیم از این دنیا و به اون کم و اندکه که داریم مراضی باشیم توصیه میکنم دوستان هر صد دنیا سبب نشه که مالشون رو بفروشن اگر ماشینی دارن نفروشن به خاطر اینکه تو یک معامله بندازن که خیرو شرشو ندونن یا منزلشون رو بگیرن رسول فرمایند کسی اگر منزلی فروخت منزل دیگر را بگیره مال نباید راکت بمونه نباید اگر تبدیل و پولش کردی اون منزلت اون ماشینت نباید ازش بخوره که تهم بشه وارد کار شو. منزل دیگر بخره ماشین دیگر بخره این از توصیه میگم به دوستان چون خیلی ها با این کارها سرشکست در دنیا شدن سرافراز باشید دوستان همیشه و سربلند در این دنیا و در آخرت